بازنگری در تاریخ قلمرو میانی چه ای یعنی مثلا فریدون اسمش شباهت داره با های نسبت بهش اش داده این ممکن بوده لقبش بوده و ما اسمش امروز عدد شده باشه این امکان پذیر هست و این آدم پدر داره این آدم مادر داره مثل داستان هرکول اینا نیست پدر مثلا خدا باشه یا مادر مثلا دلفین باشه مثل آشیل اصلا این داستانا نیست اینا کاملا انسانیه پدر و مادر به دنیا اومدنش زمینی هست از گشتاست 8000 سال پیش بوده تا همای که ما سمیرامیس فرضش میکنیم 4000 سال پیش 4000 سال فاصله است یه بهمن وسطشون بوده یعنی از گشتاب تا بهمن مثلا دو هزار سال از بهمنم تا هومای هزار سال یکی از جمشیدام بیشتر شد که با توضیح بتونیم بدیم اینا رو. بله ب... اگه بخوایم اونا رو با او فرضی که او هزار سال نه عجب حرفای علکی بود خب این که علکی تره که جدیدان جدیدا که خیلی علکی تر در میاد اگه ای بخوایم اینطوری فرض کنیم معنی چیز برای اسطوره ایران بز و و حالا خب بعد اوشیر و اینا اضافه شده و این ستا رکنه بعد مثلا, مثلا اجازه برید با... اینجا من این مخالفتی بکنم مفاهم مستوری تغییر خواهند کرد مثلا گراز جانداریست که برای ایزر بهرام مقدسه که چهرهاشه ولی در دوران مثلا شاه هم صحبت میکنه چیز مفهوم ایوان مدیه به ایران در رمله میکنه یعنید اینا قابل تغییر هست به نام یگان آفریدگار هستی بخش باز سلام و و احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید در قسمت 16 برنامه تاریخی تحلیلی ایران وج در خدمت شما هستیم ایمیل info صدای امید.com در اختیار شما شنوندگان گرامی است برای انتقال پیشنهادات، انتقادات و تذکرات شما و همچنین سامانی پیامکی 3068 22 44. ما در پونزده قسمت گذشته در حدود یازده قسمت مقدمات رو تموم کردیم چهار قسمت است که وارد متن تاریخ شدیم و رسم نمودار تاریخی در قسمت هایی گذشته بحث ها تا حدودی چالشی پیش رفت از این قسمت قرار بر این گذاشته شدی که دوستان از مباحثه و از چالش و از چالش دوری کنند فقط منابع خودشون و اسناد خودشون رو به صورت متقن، مستند و منطقی ارائه بدند و عرض به حضورتون قضاوت رو به شنونده و به که و علاقمندی که پیگیری میکنه برنامه رو واگذار بکنند در قسمت گذشته ما به این توافق رسیدیم که اون نقاط مشترک تاریخی که در اسطوره های ما هست در اسناد تاریخی و در اسناد کهن ما ایرانیان هست اونها رو باید ما مبنا قرار بدیم و از طریق اون مبنا این نمودار تاریخی رو رسم بکنیم تقریبا دوستان و به اضافه خود بنده و کارشناسان این برنامه متفق قول, قول هستند که در اسناد و های تاریخی ما سه تا سرمای بزرگ وجود داره اینو تقریبا همه قبول دارند یکی سرمایی که در دوره سیامک هست یکی سرمایی که در دوری در آستانه که جمشید اون رو اعلام میکنه یکم سرمایی که در دوره که خسرو هستش ما تقریبا واقف هستیم سرماه که در تاریخ موندن و در ذهن مردم موندن و تبدیل به اصطورشن قطعا سرماه های بسیار بلند مدت و طولانی مدتی بودن و میشه گفت اونها رو به دوره های و دوره های یخمندان متصل کرد یکی از کارشناسان جناب آقای فیروزی گرامی فرمودن که نه این پادشاهان و این سلسله هایی که در تاریخ ما ذکر شده در شاهنامه ذکر شده و در اسناد کوهن ما ذکر شده اتفاقا اینها پادشاهانی بودند کاملا اقلانی میشه برای اونها نمودار تاریخی رسم کرد و دوره داشتن و اسمه دقیقا همین اسم ها هستند کیومرس، تحمورست، هوشنگ جمشید، فریدون، زحاک تا بیا اینور که البته ایشون در کتاب نیاکان گم شده تا حدودی به این مسائل پرداختن و از طریق اسناد و کتوبی که خصوصا کتوبی که در دوری اسلامی نگاشته شده این زمان بندی ها رو انجام دادند یه پیشنهادی خود من دارم حالا ما باز هم عرض کردم از مباحثه و چالش خودداری خواهیم کرد ولی در این حال این پیشنهادم خود بنده به کارشناسان عزیز میدم که این رو هم بررسی کرد میتوان این اسناد و این زمان بندی که آقای فیروزی فرمودند رو پذیرفت که پیشدادیانی بوده، کیانیانی بوده، اون هم در این ده هزار سال اخیر، در این هشت سال اخیر و دوره های تاریخی مشخصی داشتن و کاملا اقلانی و می توان همین دوره هایی که در واقع کیومرس رو با ریشه یابی اسمی به یک دوره خاصی نسبت می دیم. یا هوشنگ رو یا تحمورس رو مثلا دوره هایی که بشر در حال تکامل هستش بشر البته تمدن بشری مثل دوره نوسنگی دوره نوسنگی مثل پدید آوردن آتش مثل به وجود آوردن لباس و کشاورزی و چنین دوره هایی هم بوده و و در ذهن استورهی ما ایرانی ها این دوره رو با نام این پادشاهانی که داشتیم و ازش خاطره داریم نامیدیم و در مورد این مسئله و نظریه هم در واقع میشه کار کرد و به یک فهم مشترک و به یک نقطه مشترک رسید. حالا امیدوارم این پیشنهاد رو دوستان عزیز تو ذهنشون باشه. در این قسمت از برنامه هم متأسفانه ما در خدمت سکار خانم دکتر آزادی احسانی نیستیم. به خاطر مشغله کاریشون نتونستن ولی امیدواریم که در قسمت های آینده حتما باشن ایشون وجود ایشون خیلی قنیمت هست برای این برنامه ولی در این حال در کنار سه میهمان و سه کارشناس دیگر برنامه هستیم جناب آقای مهتدی ایران مهر جناب آقای سورنا فیروزی و جناب آقای سعید کریمی جناب آقای ایران مهر عرض حضورتون که شما یک سری مسائل رو مطرح کردید در قسمت گذشته و جناب فیروزی سری مسائلی رو مطرح کردند اجازه میخوام که چون تو برنامه های گذشته خب البته شما اکرا برنامارش س شروع می‌کردید، این دفعه از جناب آقای فیروزی شروع بکنیم و ظاهرا ایشون یکی نوع قیاس و مقایسه‌ای ای میخوان ارائه بدن از نوع باستان شناسی که در ایران در جریان هست و نوع باستانشناسی که در کشور چین هست و در کشور چین یک تجربه ای دارن که این استور رو آوردن رمزگشایی کردن. با طریق باستان شناسی درست و اصولی های تاریخی کهن خودشون رو تقریباً کشف کردن و و تاریخ خودشون رو چند هزار سال عقب انداختن. جناب آقای فیروز زینم سلام علیکم شما بانوان عزیز می‌فرمایید در خدمت شما هستیم و با واسه خودتون رو مطرح بفرمایید. درود بر شما و شما مندرگان عزیز. ارزم به خدمتتون که طبق صحبته که قبلا شد بله من باور به این دارم که این شخصیت های پیشدادیان و کیانیان به عنوان پادشاه و پهلوان موجودیت فیزیکی و حقیقی انسانی داشتند. فرماروا بودن پهلوان ولی کردارهای های و نمادین بهشون نسبت داده شده یعنی برفض پادشاهی بوده به اسم تحمورس یا جمشید اینا کردارهای انسانی خودشون هم داشتن حکومت کردند. ولی خب روزگار متاخر تا بهشون کار اصطوره نسبت دادن یکیشون مثلا بافندگی یاد داده یکیشون شهرسازی یاد داده این قضیه فقط برای ایران نبوده برای چینی هم بوده ببینید در چین نوشته های سنتیش اینجای صحبت می کردن که یه دورایی داشتن سه فرما روا بعد پنج تا امپراتور و بعد دودمان نخستشون دودمان دومشون و دودمان های تا قرن بیستم از دودمان سوم به بعد باستان شناسی چین پذیرش کرده بود یعنی دودمان جو هزار پیش از میداد و قبل از اون تو چیزی نکرده بود و داستان خیلی شاخ و داشت میخندیدم به این داستان ها این خندیدن ها فقط بار اصر جدید نیست عین ما که نویسندگان کلاسیکی کهمون تا الان میخندم به این داستان های کهاهن ایرانی به عنوان موجود تاریخی در چین هم همینطور بوده بزرگترین تا تاریخ نگار چین به اسم سوما چین این آدم، اینقدر بهش فشار وارد می‌شد که خودش به دوگانگی رس و دو دلی که من بنویسم تو کوتاریشای کواری ننویسم این آدم مثلا اشکانیان زندگی می کرد با ایران مونده بود که بنویسم یا ننویسم بعد آخر سر تصمیم گرفت بنویسه و این باعث نجات پرکلن دا داستان داستانی شد چون این داستان از طریق آقا منتقل شد مثل مو 18 تا نویسنده نبود دو اینکه امپراتور وقتش بهش فشار آورده بود به همه چیزا که آقا داستان‌ها از من باید شروع بشن تاریخ باید از من شروع بشه یا بسوزونید یا اینکه اخته شید نگفتم می‌کشمتون بله و این نویسنده چینی اخته شدن انتخاب میکنه یعنی اون این قهرمانه و به این داستان باور کرد و نتیجه این شده که شناسی چینی این فرصت درست آزمایی اینا رو بعداً پیدا کنه این داستان بیش از اینها حیصیت است ما نمی‌تونیم به این راحت به چوب حراج بزنیم به خاطر اینکه چیز ازشون پیدا نشده بریم به انکارشون یا بریم به سمت از اینها نماد ساختن مفرد اینا داستانهایی است که به حال در جای دیگه براش سلامتیشون رو فدا کرده حالا من میخوام یکی دو تا جمله متون بخونم ببینید باز دوش چین یکی دو تا بخت بهترم داشتن چون اسنادشون مرتب‌تر از اسناد ما بوده اون هم یک داستان نخستین انسان دارن، اینن شبیه نسخه نخستین انسان بودن کیومرتز. این اون نسخه از کیومرتزی که نخستین پاتچونی است، نخستین انسانه. که در این اون نخستین انسان روی زمین هست، اجتهاد داره چیز داره. فلان رو زمینو شخ میزنه، فلان کار میکنه زمینو آباد میکنه. وقتی میمیره تجزیه میشه از هر تیکه بدنش یکی از مظاهر هستی حسی و طبیعت و جانداره و انسانها به وجود نی. یعنی کاملاً شبیه داستان ماست. بعد از اون هست که نخستین امپراتور و نخستین سلسله‌های چینی پیداشون میشه و داستان‌های خود طبیعی‌تر می‌شه و بازم اسطوره‌گونه است یعنی اینا برگ زیاد دارن قاضاییشون سالاشون بالاست ولی زمینی تر میشن خب در ایران چه جوریه یعنی همین هست مثلا به خاطر اون در مسئله تابویی که اصلا در چین تابو نبوده که همیشه ایرانی بر از اول تک خدایی بوده باشن و چند خورنی پرستیدن داستان خدایان پاک شده در ایران اولین پادشاه مملکت دمودون شده اولین انسان در متون یعنی این شخصیت دوگانه شده حتی در متون ما اهورامزدا هم دوگانه میشه یه جا خدای اولیه است قدر قدرت و آفريدگار یگانه است یه جا میاد ده تا اهریمن پایین یعنی موازاد بره می‌کنه و بالاسرش زروان پیدا میشه یعنی ما حتی این بازی رو با خدای یگانه این مملکت هم داشتیم دی وای بال شخصیت‌های تاریخی و پادشاهان و قهرمانان از این ما نباید تعجب کنیم بعد همین شخصیت های چینی یکیشون میره جلوی سیلاب اولیه رو میگیره. سد می‌سازه مردمون نجات میده. این اولین پاچه از اولین سلسله است که الان باستانشناسی چین به دنبال اثبات این کار هست چه برسه به اثبات این فرد. و باستانشناسی چینی که از قبیله باستانشناسی دنیا سری نمیشه زیر سوالش برد ولی اونها دنبال این کارا. سلسله اول به کتیبه ازش یافت نشده ولی نقاطی که مربوط بهش هست با همون قدمت ازش آثار به دست اومده یعنی یعنی رو کندن مثلا چهار تا کوزه پیدا کردن چهار تا معماری پیدا کردن زیرش می‌نین، این منصوب به سلسله شیاس ردش نکردن. یکی هم میگن اینا جسارت پیدا کردن میگن احتمالا مال فلان پادشاه هم است. در این حد اینا میتونن پیش بدن از روی همون داستانایی که ما بهشون میگیم اسطوره و افسانه و نمادین اونا این کار نمی کنن. اونا میگن اگر این ظرف برفز ظرف برونزیست با این شکل و شمایل و این استفاده کشاورزی میرسه به فلان پادشاهی که ما میگیم کشاورزی به دوران اون بود اونا این حرکاتو میکنن چیزی حذف نمی کنند در واقع این تسلیم شدن در برابر اثبات تاریخی بودنم هم نمیدن بهش اونا دقیقاً میخوام متون رو کن تا به سلسله دوم و... که اون هفته ما ارز کردیم خدمتتون که از اون سلسله دیگه کتیبه پیدا شد یعنی دیگه با کند و کاف ها اون سلسله و شخصیتاش کاملا اثبات شده و اینجوری تاریخ چین به صورت استنادی دودم، اول دودمان یک دوم که میشه 1600 پیش از میلاد به عقب رفت 600 سالترشون اضافه کردند سالا همچنان ایست ای است ولی تخمین زدن 10 تا آدم و یا 15 تا آدمم تو 600 سال برایشون تخمین زدن و این اسوری بودن یک کارهای نجومی و عجیب غریب و ماوراء طبیعی برایشون مشکل ساز نبود اینو در نظر بگیرید که اینها متون متأخر داشتن این یعنی نزدیکترین فردی اشاره کنه به این شخصیت ها غیر از اون نوشته های پیشگوی بدون نویسنده که و می گفتفتم تو این رست و این و بود که میمثل یا لاک لاک که مثلا پاتشا فلانی فلان کارو کرد این نویسندهش مشخص نیست. نزدیک ترین نویسنده مشخص بهشون همون سومای چین زمان کن. ما یه برتری اینجا داریم حالا یه جا عقب نشین دا مقابل چینج برتری داریم ما نزدیک تا این کسی که اشاره کرده به دو, دو شخص پیشتر کیانی زر توشت عش و از همه ما مقدمتر و پیشگامتر و دیرینتر هست نسبت به این شخصیت ها و از نظر این آدم از نظر این شخصیت تاریخی و حقیقی جمشید یک انسان حقیقیست نه نماد کوهو نمیدونم دوره و اینها جملهشون شما برای تو میخونه من جمله خود زرتوش هست در گاتا یسناهات سی و دو بنده هشت اینه در هشت ترجمه شده از گاتا ما این جمله رو مشابه می‌بینید از همشون جمشین یک انسانه جم جم ویونکان یعنی تا اسم پدرش هم آورده یک انسانی که پدرش هم مشخصه در اوساب ببینید ویونکان یک آدم آدمی است که کارهای پزشکی می‌کنه از گیاه هم عصاره می‌گیره اون کارهای طبیعی داره میگه جم ویونکان نیز که برای خوشنودی مردمان و خیشتن پس این شخصیتی بوده و کارهای برای مردمان خداوند جهان را خارش mort از این گناهکاران نامبردار است ای مزدا من به واپس داوری تو و برای همه آنان بیگمانم هم. یعنی زرتشت یک است نوشتش بسیار قدیمی که به ما یاداوری میکنی این شخصیت و به استناد همین شخصیت پس و پیش این آدم انسان حقیقی هست شما دنبال دوره نگردید ما امروزه میتونیم اغلب اون قد این رو که فلان کار جمشید نمیتونه زمینی باشه طبیعی باشه فلان 600 سال حکومت نمیتونه طبیعی باشه ما اینا رو باید بریم حل کنیم اینا رو میتونیم نساد بدیم به کارهای نمادین ولی خود شخصیتو به خاطر اینکه این آدم میشناخته بودش به عنوان انسان حقیقی به هیچ عنوان زیر سوال و پرسش نمیتونیم ببریم به خاطر ناتوانی امروزمون این جوری دیگه باید حل بشه مطالب به دیگر من دوره برای سوال بله خواهش میکنم خیلی متشکریم از مطلب مبسوطتون که با سند و مدرک فرمودید و غیرا نوبت شما هستش خیلی اصرار دارن جناب آقای فیروزی که اساسا این اسامی که هستش خب تا حدودی منطقی امزه این اسامی رو نباید ما به این راحتی فقط برای نمادها به کار ببریم باز هم من اون پیشنهاد که در ابتدای برنامه ارث کردم رو بازم تکرار میکنم هیچ اشکالی نداری که ما اتفاقا بیایم باستان شناسی خودمون رو به این سمت سوق بدیم که اتفاقاً این دوره ها و این پادشاهان رو کشف بکنیم و هیچ ایرادی هم نداره در کنارش به این معتقد باشیم که فردوسی بیاد مثلا یا مثلا بقیه اسناد ما بیان مثلا در مورد اون دوری یخبندان دوم مثلا دوری سیامک رو ببرن اونجا دو... اسمش رو بذاره سیامک هیچ ارادی هم نداره یه نماد دوره باشه یه نماد دوره‌ای که پادشاهی هم بوده در واقع یه دوره رو به نام اون پادشاه نام ببرن یا دوره‌ی تاریخی مثل چند هزار سال رو به نام اون پادشاه ببرن مثلا اون هزار سال دوره زها که مثلا هزار سال دوره‌ی یخمنان خیلی سوزناکی بوده اون‌ها مثلا به دوره‌ای که گه حکومتی بوده یه زهاکی بوده که ما تو تاریخ داریم که احتمالا یه فردی از یمن بوده حالا من نمی‌دونم شاید مطالعات من ایراد داره از یمن بوده این یه خاطری بدی در این مورد وجود داده اون هزار سال رو به نام او در واقع توی استور ها ببرند اتفاقا این هم یه هنری یک ملت هست این چیز ایرادی هم نداره قرار بود در مورد زمانیابی خودتون یه فرمایشاتی رو بفرمایید بعد ادامه بحث رو ما داشته باشیم درود به همراهان گرامی و پیش از که آغاز کنم من اینو یادم نره بگم دقیقا درست میفرمایید زههاک منطقش اون چیزی که ما در دست داریم در جنوب تنگه هرمز واقع میشه که با... همون ولوش یمن. با... یمن چون این روزا که ما این زبط رو میریم جلو گام به گام مناسبت میاد حالا بعضی هاش خیلی مهمه نمیشه نگیم ما خیلی هنوز فاصله نگرفتیم از دوازده تیر یا داور دوازده تیر 67 که 296 هموطن بیگناهمون تو آبهای سرزمینیمون تو هواپه مای ایرباس مورد عدف موشک ایالت متحده قرار گرفتن روانشون شاد باشه 12 تیر 94 که پشت سر گذاشتیم خیلی سال نگذشته اما نمیدونم چرا ما تصمیم گرفتیم به این شیطان لبخند بزنیم امیدوارم که این روندها تغییر کنه حالا به حال میپردازیم به بحثمون من دغدغه آیه فیروزی رو کاملا درک میکنم و اتفاقا باهاش همراه هستم ما هممون کسایی هستیم که باورمندیم که تاریخ موجود که الان هست تو برای ما نوشتن پیشدادیان کیانیان رو نقض میکنه و ما در پی اثباتش هستیم من منم هم همین دغدغه رو دارم من تا دغدغه به این حالت که آی فیروزی دارن درباره پیشدادیان کیانیان رو بنده به طور مشخص بیشتر درباره کیانیان دارم که به این حالت پادشاه سپاه و لشکر و سرزمین دارن و بیشتر درباره کیانیان دارم که این میرسیم حتما باید بررسی بشه من هم, هم همین نظر رو دارم درباره باری پیشتادیانی همیقدر اختراف نظر داریم در این حال این مقایس ها خیلی خوبه ما باید واقعا تو این زمین از یاد بگیریم حالا مصری ها بنده های خدا که اصلا هویتشون عوض شده یعنی میگن ما عربیم و خیلی هم دلبستگی به اون تاریخ کهانشون ندارن اما چینی ها واقعا چینی هن. هنوز هم چینی اما یک نکته هایی رو ما باید دقت کنیم چین کل تاریخش به سه هزار سال نمیرسه. ما فقط نه هزار سال خط داریم اصلا از پیدایش خط در سرزمین ما فقط نه هزار سال میگذره چین کل سرطاته تاریخش به سه هزار سال نمیرسه این جیروفت با ده هزار سال الان تمام هر حال دارد. تو که هم داریم تو فلات خیلی از این معنات من اون نشست درباره باره نه منطقه کهانتر از مصر در قلم روی میانی گفتم یه روز بس خواهیم کرد بنابراین مقایسه قطعی چین با ایران خیلی درست نیست به نظر من یعنی وقتی که تاریخ میرسه به اونجایی که میره فراتر از ده دوازده هزار سال دیگه اونجا دنبال بیای آدمی ریش داشته و نمیدونم قبا تنش می‌کرده توی کاخ بوده بگردیم یکم یک چیز میشه تاریخمون خیلی کهنه وضعیتش فرق میکنه در این حال من گفتم عرض کردم تو این بخش ببینید ما روی این رسم نوار تاریخی دو کار میکنیم دیگه این برای رسمش نقاط ثابت رو پیدا میکنیم حالا یک زمانیابی میکنیم اون نقطه رو با زمان بدیم تا هم. جاش معلوم بشه خیلی خوب حالا ما زمان دادیم فلانه که کی از که یا پیش جاش مشخص شد خب مکانش چی؟ خب ناد بگیم کجا بوده ؟ بله اوننا مهمه دیگه بعدا ما پس این یادمون باشه که ضمننی که ما این نقاط رو زمانیابی میکنیم بعدا دونه, دونه مکانیابی هم خواهیم کرد من الان یه دونه ندید زمانیابی یا رو میگم خدمتون بگم ما فی روزی کتاب ها نوشتن مقاله ها نوشتن من دیم توی این برنامه ها چرا تصمیم گرفتن روزی سر رو ب خیلی افنه میزنه حالا کاری نداره که من از روی کتابیشون تقلب میکنم. یک زمان‌یابی رو میگم البته وارد بحث تخصصیش نمیشم اون کار خودشونه بعد بحث ستاره شناسی ایشون تو نشسته آینده حتما اونو باز خواهند که چه چیز شگفت‌آوریه من یک سند امجوی معمولیشو میخونم ببینید من مثال میذارم درباره زمان زرتشت یک اشاره خیلی گذراي نشسته پیش شد بین من آی فیروزی که هزارها دستکاری شدن بله کاملا درسته هزارها دستکاری شدن من گمان میکنم که در مثلا حالا از چار پنج نشست آینده ما یه جایی ناچار بشیم وارد بحث هزارها و دستکاریش بشیم من احساس میکنم اگه خانم دکتر هم باشن ما چار پنج نشست فقط بحث کنیم در بوری دستکاری هزارها بگیم چطوری دستکاری شده و درستش چیه اون خیلی مهمه یعنی راست میگن های فیروزی جای کیانیان پیش دادیان رو مثل یه کشو بالا پایین کرده چرا این اتفاق افتاده و حالا چجور؟ دکتر جانشا درخشانی به این موضوع گمان کنم تو بخش هفته هم دانشنامی کاشان پرداختن. منطقه ایشون توی این بحث دیدگاه استاد زبیه الله بهروز رو پذیرفتن. دیدگاه مختلفی در این بار وجود داره. دکتر جانشا درخشانی دیدگاه استاد زبیه الله بهروز رو پذیرفتن. اونم یه دیدگاهی. منطقه ها خیلی چون دکتر جانشا درخشانی خیلی آدم باهوشی بودن اینو قطعی نظر ندادن. تمام اسناد رو گذاشتن کنار هم بررسی کردن اونجا جالبه گفتن که من معتقدم که زرتوش زمانش آغاز ازاری دوم بوده بله اسنادش هم گفتن اما چون نشانه هایی دیدن از وجود زرتوش در 8000 سال پیش اینطوری تفسیرش کردن گفتن طبق سندهایی که ما داریم میگن روان زرتوش در 8000 سال پیش آفرینشش انجام شد و وجود جهانی زرتوش در آغاز ازار دوم پدید اومد. بعد میگن احیانا شاید این سردودمان یکی از حکومت های ماد هم بوده. ببین ایشون تمام سنده رو دیده بودن. و یعنی سنده های دیو رو اینا رو هم دیده بودن. منطقه ها ایشون در 67 سالگی از پیش ما رفتن. واقعا هیف شد. چون این دانشنامه پایان ایشون نبود ایشون قرار بود اینا رو بعدا بست بده چندین کتاب از اینا دربیاره مثلا تو دانشجو کاشان با 800 صفحه 15 صفحهش مال ماد هاست یعنی برد. بدن دست من همین الان 500 صفحه درباره مادها می نیسن. پس برد. ایشون برد. یک چکیده ای از یاد داشتهشون فقط منتشر کرده بودن حیف شد. حتما من مطمئنم اگر می رسید به اونجا و ما زمانی بود از سال 90 به این طرفیشون میتونستیم در خدم باشیم نشستهایی این بحث باز می و اسنادی که امزای فیروزی کار کردن. مطمئناً دکتر جانشاد افشانی هم میپذیرفتن که اون زرتشتی که آغاز هزار دوم بوده حدود اونجا بوده یکی دو تا زرتوش داریم یکی سری دودمان یکی از حاکمیت های ماده زرتشت مادیه و یکی زرتشت باختری کردارا و اینا با هم با اون سپیدمان قاطی شده خب علم همینه دانش همینه باد پیشرفت کنه دیگه یکی مثلا های فیروزی بیاد باید بیاد راه های درخشانی رو ادامه بده کامل کنه دیگه اصلاً هم همینه اینی که میگم مثلا ما اون همه به دانش کرشن استناد می کنیم اینجا رو میگیم که کاملی نیست ما تعبدی نسبت به چیزی کسی نداریم اینکه بگیم گرشمن گفته دیگه تا هزار سال دیگه همونه نه ما از این بحثا نداریم یک بحثی درباره زمان زرتشت مطرحه در اسنادی ما داریم که در زمان گذشته یکی دو سرو کاشته شده بعد در دورش سرف. سرف. درخت سرو سرف کاشته شده دورش هم بنایی ساخته شده حالات مقدس یا عباده پرستشگاه یا چیزی داشته اینها در شاهنامه اومده در آثار بیهقی اومده در دبستان المظاهب اومده و به حال هست تو تاریخ ما هست معروف سرو کاشمره دیگه بل. و میگن که این سرو به دست زرتوش کاشته شده در زمان دودمان که گوش هستش هستشون سرو علان... اون سر رو معتصم دستور داد که ببرم ببرم به سامرا و بردن و اونجا هم زحمت کشید خوش شد و بعدش کندش کنداش کردن و سوزوندنش بله معتصم اونم از اون که یک توارش، توار مادریش ترک بود از ترک های ترکستان شرقی بود با. خدمتون بگم که این سرو خمیده ای که ما میبینین روی آثارمون داریم تو نگارگری همون یک چیزی مثل عشق و بالاشون بالای باریکش خم شده به طرف با. اون نشان سرو خمیده است دیگه که بریده شد و ما هنوز داغ اون ایرانیا هزار ساله که اونو روی آثارمون رو بوتا جگو خمیده رو میکشی این یادمان اون سربه پس ببین خیلی مسئله مهمیه برای ایرانیا اون سر رو میگن تو آثار هست که زرتوش کشته. کاشته خیلی خوب ما زمان کاشت این سر رو با سنداشو بگیم دیگه که کی بوده کی بوده اگه بگیم کی بوده سندانشون بدن زمان کاشت سرف کی بوده زمان زرتوش معلوم میشه زمان زرتوش معلوم میشه زمان گشتاسپند معلوم میشه, میشه. خیلی حالا اتفاقا آیه فیروزی تو کتابشون سنده ایجهیر هم جمع کردن که اینایی که امروز هستن تو ناشکا اینا رو خیلی دوست دارن دیگه. به اسطلاح یونانی دیگه ماله. سنده یونانی میگیم که دیگه خورده هم به ما نگید دونه دونه من میخونم ادوخوس زمان کاشت این سرف رو 6 هزار سال پیش از مرگ افلاتون اعلام کرده خب؟ مرگ افلاتون مرگ افلاتون 2400 و 56 سال پیشه تو نظرش که ثبت شده دقیقا مشابه نظر اودخوس. ادخوس خدمتون بگم که پولینیوس دو تا نظر داره یه نظر مشابه ادخوس و عرستوه امه. یعنی نیمه دوم هزاره هفته پیش از میلاد بله. و یک جا هم از قول هرمیپوس میگه که خود اون بر اساس سند هرمودروس که از شاگردان افلاتون بوده میگه که زرتشت یعنی همون زمان کاشت اون درخت هزار سال پیش از رخداد نبرد تروا بوده تروا بوده یعنی شما 5000 سالو همین میشه اینم همین میشه 1186 پیش از پیش از میلاد میشه 3100 سال پیش یعنی 5000 سال ببینیم باز هم حدود 8000, 8000 سال همین 8000 سال پیش میشه بله پولینیوس یه جایی دیگه میگه که بانی یهودیت یه چند هزار سال پس از زندگانی زرتشت میزیسته حالا شما زمان آغاز یه یهودیت یه هر وقت حساب کنید چند هزار سال قبلش بله پلو تارک زمان اون کاشت رو باز اون هم 5000 هزار سال پیش از رخداده نورده تروها تروها ببینید ببینین اینا مونه میزنن با هم دقیقا آپلو درست در کتاب خودش با عنوان انقلاب زم... زمینی آین مغان رو که ماگوس نوشته زمان تشکیلش رو کهانتر از زمان آین مصریان باستان میدونه حالا اون رو 4 سال فرض کنین اینو از اون کهن‌تر میدن یعنی میره تا اونجا پلوتارک و ارسطو هم باز اونام هم همینو میگن میگن زمان آین تشکیل آین موگان پیش از آین مصریان باستان بوده دینو باز هم از همون رختاد نگاراست اینم میگه 5000 سال پیش از نبرده تروان ترو هم ثبت کرده کورنلیوس مشابه نظر دینو خان توس لیدیایی ثبت کرده تو دو تا اثرش یک جا 600 سال پیش از دشگر کشی رو با آتن یه جا 6000 هزار سال پیش از اون احتمالا همون 6000 هزار سال چون با بقیه سند خب؟ قابل قابل آره. سویداس دوباره 5000 هزار سال پیش از نبرد تروه ترو. حالا ما مثلا به شاهنامه هم بخواییم یک قیاسی بکنیم دیگه حالا دایم. دیگه اجازه داریم چون کل سند یونانی خوندیم حالا دیگه شاهنامه هم بخواییم شاهنامه در مورد سرایشش خود فردوسی یه جا میگه میگه که از زمانی که زمانی که نحوه تکوین شاهنامه رو میگه اونجا میگه که سندایی که به دست آورده میگه این صدا این حالت رو داشتن میگه گذشته بران سالیان 2000 گریدون که برتر نیاید شما یعنی میگه سندایی که علن به دست مرسیت که خانم اساندیتون نشست گفتن و من اونا رو از اون شاهنامه رو به نظر آوردم از زمان بازنویسی اونا که اینا موجود بود 2000 سال گذشته یعنی 1000 سال فردوسی مال پیش از هخامنشیان بازنویسی اون اسناد خب پس این که وضعیت شاهنامه حالا تو اون اسناد چی نوشته شده بوده درباره زمان فرمان روای گشتاس در اونجا زمان فرمان روای گشتاست و شاهنامه این اینو دربارش میگه میگه گذشته بران سالیان شش هزار گره ایدون که برتر نوید شما خواهید شش هزار سال با این سنده یونانی همین. همین شما زمان فردوسی رو با شش هزار جمع کنیم میره بالای هف هزار سن خدمتون بگم این اسناد هستن در دسترسن من تعجب میکنم وقتی که اینایی که امروز تو کشور ما تاریخ کار میکنن به اینا میرسن من نمیدونم چرا قیرشون میگیره اصلا من. به یک جایی که میرسن خوششون نمیاد میگن نه دیگه این که قصه دیگه چیزی همین گفتن شبا وقت بگذرونن اصطلاح این همه سلعت هست دیگه شما نمیدونم آدم خودش اینا به به کوری میزنن یا واقعا سوادشون ندارن من متوجه نمیشم در این من. حال این یکی از زمانیابی بود که ما درباره این نقاط تاریخی که داریم تلاش می‌کنیم، یه دونش زمان گشتاس رو ما با این سند ها که راحت میتونیم یه چیز رو دونست 8000 سال پیش میشه خود. این زمان میدونیم حالا اگر سندی بیاد بررسی کنیم ببینیم جاش تغییر میکنه مثلا یه سنده دید نمیدونم واقعا هست سنده دیگه که مثلا نوشته باشه از قول یک مثلا آتنی که زمان ز دو هزار سال پیش از افلاتون بوده ما دست کم نیدیم چیزایی که بود اینا هم حالا این زبانی زمانیابی حالا بعدا اگه باز فرصت شد در خدمتون بودیم درباره یه مکانیابی هم باز همجا با اسناد بررسی اسناد بنده در خدمتون هست. بله خیلی متشکرم می اقا ایرانمهری گنامی دقیقا خود شاگرد افلاتون میگه که 6000 هزار سال قبل از مرگ افلاتون در واقع عصر زارتشت بوده و خود یونیان که عفوون در یه سری جاهایی بسیار تعصب وازه ما مثلا در کتاب هروودوت می‌بینیم که چقدر با تعصب و بعضی جاها با کینه نسبت به تمدن ایرانی نام می‌بره ولی در این حال ما می‌بینیم که کوهن بودن تمدن ایران رو از این اسناد ما می‌تونیم بفهمیم اگر ما پشت... حالا بحث رو اینجا بحث درست نمی‌کنه ما در برنامه بعدی مطرح خواهیم کرد پس ما اگر گشتاس رو 8200 سال پیش بپذیریم با این اسناد حالا زمان دعای شاهفیوزی بعداً در ستاره شناسی سال مشخصه بله دقیقاً هیچ چیزی حدود بین 8200 تا 8500 سال قطعاً ما آخرین سرامای خسرو رو باید پیش از اون پیش از اون باید بدونیم با. خیلی پیش از این بدونیم و شاید نزدیک 2000 سال پیش از اون شاید بنده نشسته بدون. پیش درباره یک برخورد یک ستاره دنباله‌دار با آمریکای شمالی عرض کردم که سندش رو بردم اون یک سرمایه ایجاد میکنه در نیمکره شمالی نزدیک به دو هزار سال دوباره زمین وارد سرمایه میشه بله. اون نزدیکترین سرمایه پیش از گشت هست حدود دروازه تا سیزه هزار سال هزار. بله خیلی متشکلی آقای کریمی مباحث زبان شناسی رو از هفته پیش هم شما شروع کردید در رابطه با زبان یابی ادامه‌ی فرمایشات شما رو می‌شنویم زمانی که اودودن نزدیک ده دقیقه شما فرصت دارید و نه خدا و درود فراوان دوستان گفتن که نهاییم که تاریخ ایرانو هدر بدیم همین جوری خب اتفاقاً من نظرم اینه که اون روش خیلی ما هدر میدیم خیلی از اصول آمونو. ب وقتی ما میتونیم با کیانیانمون تو حد 1400 پیش از میلاد پیش بریم اه آه ایران مهرهم فرمودند چین چقدر م چقدر؟ حد چدحداکصد تا سه هزار سال ما داریم میگیم آقا با کیانیان تنها ما تو هزار چهارم پیش از میاد یعنی شیش دو برابر چین با خود کیانیان خواهیم رسید چرا بیایم د چرا بیایم بقیه پیشدادیان اون قربانی بکنی خب حالا ما قرار گذاشتیم که از داده ها استفاده کنیم. بله این قولی بود که از همون اول داده بودیم بعد اونا تا آخر اول کنیم. نه که هر جا دیدیم نظریامون موافقشه ازش استفاده کنیم، هر جا دیدیم نظریامون باهاش مخالفه، به وزیر مشکنار یا نسونیما ازش استفاده بکنیم. بعد من موندم کی ما بعد خودمون ایرانی بشیم یا بعد از چینیا یاد بگیریم یا از مصری‌ها یاد بگیریم یا از فرانسوی‌ها یاد بگیریم یا انگلیسی‌ها یاد بگیریم یا روس‌ها یاد بگیریم کی بعد خودمون بشیم. این زمان ایرانی شدن که ما اینو نفهمیدیم اسما یه زمانی بعد اصلا ما تمام اون همینه خب غربی‌ها اومدن ما رو به سبک غربی سنجیدن حالا ما خودمون بریم به سبک چینی و مصری‌ها بسنجیم چه فرقی کرد؟ دور همونه بعد خدمت شما راست شاید که شاد که بپرسن که خب به سبک ایرانی اصلا یعنی چی؟ شهندگاه ب... ها بسه ما میکن شما به سبک ایرانی چیه دقیقاً ما مکتبی تحت مکتب مکتب باستانشناسی ایرانی داریم بقیقه. حالا ما چیزی معرفی میکنم که به اصلا قرار که از قبل باشه چرا ما الان گذینه هاشون میگم که چه آیتماعی وقت باشه پاسخ اینه که بررسی موارد تاریخی به سبک ایرانی یعنی اینکه که همه ی من تحکیم کنم همه رو دارم میگم همه ی نوشته های ایرانی و یونانی ایرانی اهم از اوستا حتی ها اوستای ها. ها، و یشتها و وندیداد کتیبه های فارسی باستان که دیگه اصلا مسجده ما رو دوزار پیش هست، کتیبه ها و نوشته های پهلوی اشکانی و ساسانی، شاهنامه، نویسندگان و مورخان اسلامی همه و همه باید راستی آزمایی بشن، و از فیلترهای دانش گوناگون همش باید عبور بکنه حتی اگر در یک فیلتر گیر کنم اون علمی نیست این فیلتر زبانشناسی، دیرین آبا هوا شناسی بعد زمین شناسی، یافته باستانی و از همه مهمتر ژنتیک حتی اگر از یه دو نشه این برای ما قابل قبولیست قبول نیست. نیستش، علمی نیست دوستون از ها فرمون اولی که ها با گاتو فرق می‌کنه در اصل گاتو داخلی یسناه هستش ولی یسناه از سودای اشو زرتوش نیست خود گات به تنهایی از سودای اشو زرتوشته خب ما داریم در یست نه دو 11 داریم که در مورد گیاه هومه این یک گیاهی بوده که ها میگن جزء مواد مخدر بوده، خدر آور بوده، بعضیا میگن جزء مسکننده بوده، یا آور بوده که حالا ما دقیقاً چه گیاهی بوده در یست نه و یازده میاد از این گیاه تعریف میکنه و کسایی که این گیاه و اصارهش گرفتن میاد میگه خدا بهشون نعمت داد بهشون پسر داد خب. اصلا یه جا هست شما می‌بینید میاد اصلا صحبت میکنه مثلا در یستنا هات نه اومده میگه ای هوم کدامین که از دگر باره در میان مردمان جهان من یعنی جهان مادی خلاف مینوی از تو نوشابه بر گرفت نوشابه اسمی که ما الان داره میز از کم انش آب بوده ان و منفی کننده بوده اواش ونی مرگ بوده آبم که آبه یعنی نوشابه که ضد مرگه یعنی آب حیات هم آب حاطتی کهادان می حیاط میشه از تو نوشابه گرفت کدام پاداش به او داده شد و کدام بهروزی به او رسید یعنی عملاً داره گیاه ها اصلن باش حرف می زه بامالی با شخصت زنده می بینه آیا باید آقا گیاه زنده است باش با گیاه حرف میزده اصلا سب که استرا ها این استرا همه پیش از زرتوش بوده. اصلا وندیدات داره از سرماه۴ هزار سال حرف میزنه مگه شوخیه اونجا از زمانزارتش بوده حتی اگر من که قبول ندارم 8500 بعد اونم ثفات بشه باز 6000 سال فاصله است نه؟ یعنی برای زردوش همون یه اسطوره هست اصلا این سبکه اینکه آقا ما مثلا در تمام ادیان ما داریم که با ها صحبت میشه با گیاها صحبت میشه با جانورا صحبت میشه ولی این دلیل بر این نمیشه که هفته پیش فهم بودن که این سرمایی که نام برده شده در اوستا در وندیداد که من خوندمش در بند 22 بود سرمایی پس از مثلا خورده سرمایی بوده خب این خورده سرمون خب وا خورد تعیین کنیم منظور از یعنی چی خب من علاقه من درخواست میکنم که همه هنگی گفته های وندیداد من یادم رفت بگم مینوی خرد هم دقیقا داستان جمع چه قبل از سرما چه بعد از سرما آورده چرا قبل از سرماش مهمه بنام میگم هم در مینوی خرد اومده هم در وندیداد چون بسیار این داستان مهمه ما م... م... این تاکید می میکنیم روش به خاطر همین بود که ما این اومدیم گفتیم آقا وندیداد زمان جمشیدو گذاشتیم زمان اولیه و مبدا محور مختصاتیمون خب اگر دوستان میخوان ببینن های وندیداد و اون های عصر یخمدان میتونن به کتاب داستان ایران روی 129 مراجعه کنن همون صفحه اگر هم دوست ندارن میخوان خود متن اصلی رو بخونن یک کتابی هست برای دانش زمینشناسی شناسی نام داستان اصر یخوندان نویسنده ها روز وایلر و جرالد ایمز ترجمه خانم حمید قروی روی 38 و 40 و واو, و واو این گفته های وندیداد و مینوی خرد کاملا بر این منطقه ما بیایم میگیم یه پادشاهی بوده بعد اومدن 14000 سال پیشو به این پادشاه نسبت دادن اصلا کاملا مردوده زبان شناسی اصلا شما وقت دید اسوش میکنید اولین چیزی که کنارشه زبانشناسی شناسی به هیچ عنوان شما نمیتونید حتی نژنتیک، نه باستان شناسی، نه ستاره شناسی، نه, نه زمینشناسی شناسی هیچ کدومشون نمیتونه در مقابل زمان شناسی بکنه. وقتی شما دارید می‌بینید که آقا سه مدل شما اسمها دارید مثلا من خیلی ساده بگم الان تو شاهنامه سالوی و همه جا اومده می... میگه این گفته سالوی میگه بنا به قول ایرانیان قدیم کیومرس بر قلل جبال معوا داشت زیرا در آن زمان بنا و امارتی بر روی زمین نبوده است کیومرس را گرشاه یعنی پادشاه کوه نیز نامیدند خب گره که ما تو وندیدات خدمت جاسفش خونیم گعیری است به معنی کوه در زمان های بومی هم بوده در متن یادگار زریران که نسبتش میدن به عشقانی هم اومده اینجا هم میدید اومده این یعنی اینکه آقا این پادشاه تو کو بوده ما میایم به سبب که چینی‌ها اینو بکنیم بکونیمش بس بعد بگیم آقا اسم خوانیره سو بزنیم لیان اسم کیومرس هم بزنیم لینچان اون که نمیشه که اینا اصلا آشکارا داره میگه آقا این نشان دهنده از آغاز زندگی قارنشینی بشره بله ما چهل هزار سال قانون ول کنیم به بشاسیم 1000 سال 2000 سال ولی اینکه این مثلا یک خادشاهی به نام هم واقعا وجود آها داشته باشه اونم هیچ ای ایرادی نداره که بپذیرید ببینید چون این اسم ها اصلا زمینش فرق می‌کنه من اون دفعه گفتم خدمتتون اسم یک کیانیان بهویریه یعنی دارندگی توشه ولی تو اینا به هیچ عنوان هیچ خاصیت شما نمی‌بینید من... حتی خود دوستان مثلا از ابوریحان بیرونی میگن حتی خود ابوریحان بیرونی هم بین اذان باشه که سه دست است بعد خدمت شما اینکه ابوریهانم بعداً میرسیم اصلا شما نگاه چه می‌کنید از کیومرث تو هیچ اسمی از دشمن خارجی نیست آله. از کیومرز تا فریدون از تازه جمشید که اوایل فریدون میشه تازه اسم زهاک میاد یک مم. دشمن خارجی یعنی کاملا نشون میده که این جنگ هایی که مثلا در زمان کیومرز اینا همه نمادهای های جنگ های طبیعیه نه جنگ با قومه های دیگه ایش نامی از کشور دیگه نیست. نه تورانی وجود داره، نه سلمی وجود داره، نه پهلوانی مثل رستم و گر... اینا وجود داره. بس. بعد اینها نشون میده که این درگیری هایی که اینا میگن این اهریمن های حالا باید ما بهش میرسیم. چرا از اهریمن نشان سرما میگیریم؟ برای که سند اوستایی داریم. چرا مثلا از دیو که میگیم می آقا مثلا تاریکی شبد سند اوستایی داریم. وقتی اجدهار میگیم می آقا منو چیه؟ نه همه سند دارن. واظنم تکرار میکنم از کیومر تا همه و همه دارن مبارزات بشر برای بهبود زندگی از ابتدایی ترین شکل قارنشینیش تا تکامل اولیه تا رسیدن به عنوان تا انقلاب کشاورزی تقریبا دوره انقلاب کشاورزی ما سعدی فردوسی که الان دیگه فقط نخوام وقت بشه بخونی حتا فردوسیان قشنگ نام میبره میگه اینو با حیوانات به کوه منو می میبرن یعنی هنوز زندگی انسان و حیوان با هم در آمیخته است تقریبا بله یعنی هنوز حتا جدا از هم نشودن اکنون <تصفيق> داریم میانسنگی و نوسنگی هستش اینکه این, این شاه بودین لباس سرشون نیست این سنگنگارا لباس سرشون نیست واسه دنبال تاج و طلا و تخت و پادشاه و اسب بوزین بگردیم پیش از نوسنگی نو و نو نو نو نو بله خواهش میکنم خیلی متشکرم جناب آقای کریمی وقت برنامه هم بود به پایان هستش ادامه این مباحث رو میذاریم برای قسمت 17 هم. شما شنوندگان گرامی رو به خداوند متعال می‌سپاریم خدا یار و نگهدارت